سيو نهو من درس السورية يوسف عليه الصلاة والسلام ويا يساد النه فارمودي الله جل شأنه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولا دار خير للذين اتقوا أفلا تعقلوا بعد ذلك سوري يوسف وقصة يوسف تمومشت دار انتهي سوري الله جل شأنه يا دوري هي الرسول صلى الله عليه وسلم جزا میکنه. سوره یوسف کسی اندوهی، غمی، حسی دلتنگی نداره و این سوره رو بخونه مگر اینکه که کشایشی در قلبش، دلش آرامش، سکونت حاصل بشه. چون از حکمت الهی و از تقدیرات و مقدرات الهی که الله بر ماها نوشته و سرنوشت نیک که برای مؤمنین نوشته انسان در این سوره میبینه این سبب میشه که انسان امید و تمعش بیشتر بشه روزافزون بشه خوشایشی در قلبش ایجاد بشه که عاقبت نصره، عاقبت عزته بلندی سربلندیه، سرفرازیه هر کاری کردن که از دست یوسف راحت بشن نشود. چون الله با یوسف بود اونها ده نفر بودن، تنومن بودن، قدرتمند بودن، ده تا برادر خواستم بکشن نتونستن یک از برادران اومد جلوشون گرفت خواستن تبعیدش بکنن، دورش بکنن از بدر تو چاهش انداختن، نه مقامش مقام بالایی بزرگیه یوسف باید بزرگ بشه چون الله میخواد بزرگ بشه وقتی که الله بخواد یه چیزی بشه خلق خدا نمیتونن کاری بکنن مخلوقات نمیتونن کاری بکنن نمیتونن جن و انسش جلوب اون عزت و جلوب اون سربلندی را بگیرن مقام عزت شرف اگر الله هست پدر یوسف از برادرانش به عنوان ستاره و خورشید و ماه و اینها یاد میکنه یوسف چه جایگاهی داشت در میان ستارگان که اون ستارگان همچون خورشید و ماه به سجدهش در اومدن به چه مقامی رسیده یوسف با اون صبرش تحمل شکیباییش امتحاناتی که خصوصا در مقابل زلیخا و شهوت و زندانی و در همه امتحانات یوسف موفق در میاد پیروز در میاد موفقیتش در این فتنه‌ها و ها و مصیبت‌ها سبب شد که این در میان ستارگان درخشان بشه درخششش از خورشید بالاتر بشه که خورشید سر به سجده‌اش و تعظیمش در بیاد خورشید سر به تعظیم یوسف در اومده خورشید که یعقوب علیه السلام اونم پیامبره بلکه این پیامبر این پیامبر که این درخشیده را تعظیم میکنه مقام تجلیل اجلال بزرگی و بزرگوری ستودنی افتخار پدر به این فرزند این قرتوی یعنی هست که مؤمنین از الله میخوان که بچه هاشون نور چشمانشون باشه. یعقوب مسرور احساس عزت میکنه سربلندی میکنه در این فرزند علامات نبوغ و علامات صدق و بزرگواری رو از هم بچگی در یوسف میدید سرزنش میشود سرگفت میشود از بچه هاش که چرا تو اهمیت می‌دی این به سر؟ چرا این اینقدر کردی؟ چرا فلانش کردی؟ بچه ها به غیرتشون برمیخوره، حسادتشون برمیخوره. ولی که اینجا مقام عزته. نگاه کنید این همون که شما برای من صفه میساختید و باوش درست می‌کردید و مرا سرزنش و نگهش می‌کرد این همون بچه است. نگاه کنید سر شدم نشدم، افتخاره، عزته. چگونه باید این بدونن که پدر به صلاح تون، دینداری افتخار میکنه. افتخاری باشین برای پدرانمون. سربلندشون بکنیم، روسفیدشون بکنیم، پشیمون نشن، نه از ازدواجشون، نه از تربیتشون. پدر همیشه سربلندی فرزندش رو میخواد. پدر همیشه دل سوز فرزندشه. افتخارش به اون فرزندشه، به اون زحمتی که کشیده، اگر عرق ریخته، اگر کاری کرده، اگر کتابی خونده برای اینکه این نهال این به و درست بزرگ بشه، همیت داده به اون، دنبال منتظر نتیجهشه. اینجا سمره رو بینه در یوسف سربلندی بلندی عزته که الله جل شألو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم با این قصه دلداری میده با این قصه بهش میگه تو نه این که برای خانواده تو قومت خواهی شد بلکه سربلندی امت محمدی علیه الصلاه و السلام اگر یوسف پدرش بهش افتخار میکنه برادراش بهش افتخار میکنن او رو میستاین به خاطر این جایگاهش ای hey, محمد امت تو را میستاید امت عزت شرفش به مقام توست امتی که خواهد امت تو را دوست میدارد افتخار به تو میکند شرف خودش عزت خودش رو در تو میبینه جایگاه تو هم کمتر از جایگاه یوسف و یعقوب نیست جایگاه تو خیلی بالاتر از این خواهد شد این یک چیه روحی یک امید یک دلداری و تلدادن به رسول الله صلی الله علیه و خبر را مجدگانی از اون چیزی که در آینده رخ خواهد داد. کدوم مسلمان هست که اسم نام محمد صلی الله عليه و سلام نشنبه و خوشحال نشه و افتخار نکنه که من پیرو راه راه اسلام. محمد صلی من مسلمانم افتخارم به اسلام به کدام اسلام اسلامی که محمد مصطفی صلی الله عليه و سلام افتخار خودمو رو میبینیم در پیروی از راه محمد صلی الله علیه یک نفر بیارید در عالم که افتخار بکنه که پیرو ابو جهل یا پیرو فرعون والله یک نفر بیارید در عالم که افتخار بکنه به اون معاندینی که جلو رسول رسولان در دعوتش ایستادن یک نفر شما نمیبینید که افتخار بکنه، ولی که ما افتخار می به پیغمبرمون محمد صلی الله علیه وسلم سر نماز برش درود و سلامات میفرستیم. نامش میاد برش سلامات و درود میفرستیم میگیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. شرف این مقام که همیشه یاد نیک تو باشه. حتی در نمازها ازش غافل نباشیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. سلام علیک ای یا و رحمت الله و برکات. سلام عليك ای یا نمازی هست مؤمنی بخونه و دعا بر رسول الله سلام نکنه میجوری تحیات نخونی همون بچه از بچگی باید یاد بگیره حب رسول الله و سلام و دعا و سلام و درود بر رسول الله صلی الله علیه و ما تربیت شدیم این اینجوری ما ساخته شدیم این اینجوری ایمان در دل ما کاشته شده و حب رسول الله الله علیه و سلام در دل ما کاشته شده با افتخار عزام میذریم داد میزنیم فریاد میزنیم اشهد ان محمد رسول الله با افتخار میگیم صدا میزنیم فریاد میزنیم هر معاندی بشنوه که محمد در سوره الله پیغمبر الهی با افتخار میگیم با عزت میگیم همه بشنون شیطان است که فرار میکنه وقتی که از آن میشنوه چرا عزت را میبینه افتخار مؤمن را میبینه ولی این افتخار جای نورش کم رنگ میشه جای تابشش کم میشه به خاطر چی به خاطری که سیلت رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد نمیشه خونده نمیشه به اون بچه گفته نمیشه کوتاهی میکنیم دیگه اون دوران مکتب های قدیم نیست بشینن بگن قصه و داستان های پیغمبران رو بگن. نیست الله خیلی حاقبت وخی می خواهیم داشت در آینده وقتی که این بچه هایی که هیچ چیزی از این افتخارات نشنون و نبینند، بچههایی که ندونه ارزش دینش، قدر دینش خیلی سخته والله چی خواهد شد در آینده؟ این هست که ما مسئولیم در مقابل این بچه ها باید اونها را یاد بدیم باید بگیم بهشون از این افتخارات از این عذت هایی که مسلمان ها بهش دستیایی پیدا کرده اینجا یک مثالیدمونی هست. اس یوسف علیه السلام که الله با اون رسول الله صلی الله علیه و دلداری میده و به ما هم اینطور یوسف اگر این عزیز شد این عزتی به خانواده داد افتخاری بود برای اونها شما هم ای مؤمنین این پیغمبری که ما این نصرتش دادیم علیه الصلاه و السلام اونم نور چشمان شما قرار دادیم شما هم افتخار ببرزید به اینکه به این چنین ایمان آوردید ما ارسلنا من قبلك الا رجالا اي محمد عليه الصلاه والسلام بدان ان كپیامبرانی که قبلا فرستادیم يعقوب اسحاق ابراهيم والان يوسف عليهم الصلاه والسلام انها مردان بودن. مردانی از انس نه از جن نه از زنان ما زن بر نداشتیم بعضی ها اسناد کردن به فرموده الله جل شانه در بحث الهامی که مادر موسا شد و موقعی که حامله بود و زایمان کرده بود الهام شد و وحینا الی ام موسا این میگن وحی شده پس بر بود وقتی که وحی شده نه وحی به معنای الهام میاد اینان الله جل شانه در بوریه زنبور اصل میگه و وحینا الی النحل بحیانی بالنحل النحل الهام کردیم. این الهام این الهام وجودانیه برای نجات موسی بهش گفتیم برو او در اون جوب آب رها کن و ما دوباره بهت بر خواب دیده بود الهامی الله بهش کرده بود که این جریان این تاریخ پیش خواهد رفت این خواب از باب مجده الله الهام کرده بود بر مادر موسی علیه السلام پس پیانبران فقط مرد بودن پیانبران فقط از انسان ها بودن از جنیان نبودن این مقام شرف انسانیت را میرسونه انسان جنس برتر در مقابل بقیه مخلوقات الهی برتری انسانه نوع خلقتشه افلم يسيروا في فی الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم افلم يسيروا نمیرن مردم ببینن چگون بود عاقبت امتی که پیغمبران رو تکذیب کردن اینا پیغمبران فرستادین یک نمونهش اینجا یوسف بعد از یوسف موسا میاد چی شد بر سر فرعون برید نگاه کنید چی شد بر سر قوم لوط چی شد بر سر قوم سمود چی شد بر سر قوم هود ببینید کدوم عزت یاف و کدوم سرفکنده شد و نابود شد کی سرفراز راز بود در بنیان اینها یوسف یا برادرانش موسی یا فرعون ببینید قصه و داستان ها ببینید مردم چی میگن برید مردم محسو ببین مردم شام بشنوید از اون قصه و داستان ها الله دارشون میگه شما باور ندارید قرآن رو نمی نمیخوای بخونید باور ندارید این خبر و داستان های الهی قصه های حقیقی و واقعی شما اگر بهش باور ندارید برید خب جا باشید برید ببینید آثارشون که هست رها کردین آثار قوم حوت که هست آثار قوم سمود که هست پیر دیدین وینظروا کیفا کان عاقبۃ من قبلهم عاقبت اونایی که تکذیب کردن پیامبران الهی چی شد قدر پیانبران رو ندونید شما قدر جایگاه و منکنتشون و اون حرف و سخنانشون ندونید آخر عاقبت شما هم اگر در این دنیا نشد در آخرت هم مثل اون اقوامی که نابود شدن ها عذاب شکنجه است اینها هم در دنیا با هم در آخرت عذاب خواهند دید شما اگر اینجا عاقبت نشدید اونجا حتماً عقبت میشید اینا است که الله داره یاداوری میکنه کیف کان عاقبه من قبلیم و دار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون آخرت بدون شک برای هر متقی بهترین این دنیا یوسف علیه السلام قصه از اول تا آخر میخونی همش دلتنگی چاهه نمیدونم تو قصر و فتنه های زنا و از زلیخا میره به اون زنا زندان میره و همش سختی سختی های پیدرپی پی. پشت سر هم الله نخواسته که پندش را خار بکنه یا بندش رو حقیر بکنه میان خلقش نه الله عزت بندش رو میخواد خصوصا در اون سرای جا بدانه اینجا سرایی هست مثل خلاص هم که بیان میکنن مثل درختی سایه ناخته یه چند لحظه ای مدتی زیر اون درختی بعد از زیر اون درخت میریم چند لحظه ای دنیا لحظاته دنیا لحظاته چند لحظه یک چشم هم زدنه عمری از ما رفته نمیدونیم چل شدیم پنج شدیم ش شدیم الله زمان سرعت میگذره رمضان داره پشت رمضان میاد سن میدوه و این سرعت عجله چش به هم بزنیم ما لب گوری روی شونه ها داریم هم میشیم ما رو در کفن پوشیده چش به هم بزنیم ما رو گذاشتن لحد رو سر رو سرمون گذاشتن و سنگ و گل وردن دارن لحد می پوشونن که خاک بریزن بر سر ما چشمو باز بکنیم منکر و نکیر بر سر ما ایستادن مرب رب بکمدین چی بود دینه چی بود اعتقادت سرعت زمانه سرعت لحظات این زندگی که الله داره میگه زندگی دیگی ارزش چرا اینقدر خودخوری میکنی چرا چرا اینقدر اهمیت و ارزش میدی پول جمع کو پول جمع کو خونه بساز میدونم همش به فکر جمع کردنی همش به فکر مال و اندوخت کردنی چقدر میخوای اندوخته بکنی تا کی این هم اندوخته کردی این هم اندوخته کردن به کجا رسیدن اندوخته آخرت چیه الله داره میگه اون اندوخته برای من مهمه برای من مهم نیست که تو چقدر مال داری چقدر ثروت داری اندوخته آخرت چیه اونجا چه توشه‌ای با خودت خایور چی اونجا چی دستته اینکه اینجا خزائن داشته باشی زمین رو داشته باشی این زمین فنا میشه کل من عليها فان همه فنا میشن نابود میشن زمین نابود میشه چی بشه ما اینقدر جمعش بکنیم جمع میکنیم که یک روزی خوش باشیم 70 سال 80 سال جون بکنیم به انتظار اینکه یک روزی راحت بشیم و یک روزی بشینیم و لم بدیم به قول خودمون دنبال لم دادنی چه لذتی داره این دنیا والله هر لحظه‌ای که میخوای لم بدی بالا به قول خودت منتظری که خوش باشی تمت در بچه ها تو فرزندان که الان بیان به دادت برسد هر کتوم زن و بچه و فرزندانی داره خونه و منزل و کاشانهی داره یکی شرقی یکی خربه خودت تنها نشستی با خوده آرزو داره که یک از اون فرزندان تماس بگیره پدرجان حالت خوبه اونم نمیابی نه دوستی نه رفیقی به درد کسی نمیخوری به درد خودت هم نمیخوری بلند شدنت با حساس رفتنت با است. نه زانو جواب میده نه عضلات جواب میده نه بچه هایی که این همه زحمت کشیدی براشون میخوا به اون روز بری که نتونی روی پای خودت بسی دورکت نماز است نماز شب نتونستی روی پای خودت بیستی این پا چطور کمکت میکنه در سران پیری که به عبادت الله به و بر الله را بپرسی با اون پاها، پاهایی که در جوانی هزینه نکردی برای دو ساعت ایستادن برای نمازش تااعتش ادتش الله که فقط یاارت روی براش ایستادی ولید شد یارت شد اونجا هست الله یاورت خواهد شد که تو اگر از الله یاری نجستی توقع نداشته باش که در سران پیری الله یاریت میکنه هیچ کس به دردمون نخواهد خورد جز الله یکتم و دار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون متقین شما در میخی به درجه شرف تقوا رسیدید. مکانت تقوا اینه که دنیا درای اون شخص متقی بی ارزش باشه، پوچ باشه. نمیاد قصه بخوره حالا پولم خوردن چه کار کنم؟ حالا ورشکست شدم، حالا نمیدونم درهم و دلار بالا رفتن، حالا نمیدونم گرونی اومده، حالا نمیدونم ماشین رفت بالا، حالا خار شدیم، حالا فنا شدیم، حالا بچه‌های ما چه کار میکنن؟ آیندهشون چی خواهد شد؟ این همش توهمات ابلیسی همش وحی ابلیسی و این شیاطین لا یوحون الی اولیاءهم ما ولی الله نشدیم ما ولی شیطان شدیم شیاطین هستن که بر ما وحی میکنن این چیرین ما رو وسفسه میکنن این چیرین ما رو آشفته میکنن این آشفتگی شیطانیست میخواد ما در اندوه غم باشیم همونطور که خودش اندوهگین شد اون زمانی که سجده نکرد و آدم میخواد ما اندوهگین بشیم اولی الله با این قصه یوسف میخواد ما را از اندوه بکشد بیرون نمیخواد مؤمن در اندوه بمونه اندوهگین بشه میخواد متقی تفاوت داشته باشه با دیگر م اونا رو بیرون بکشه و این سوره یک از اهدافش اینه که الله بندگانش رو دلداری بده و از اندوه بیرونشون بیاره بس متقی قم دنیا را نمیخوره دنیا رفتنیه دنیا بی ارزشه. دنیا بال پشه از الله ارزش نداره. نمیاد صله رحمشو ارحامشو قط بکنه به یک وجب زمین و چمت زمین و دعوای ارث و میراس. نمیاد ارحامشو قط بکنه از یوسف یاد میگیره. یوسف بخشد با این همه شکنجه‌ای که دست رو شدید خوبی کن هرچقدر بدی می‌بینی. این شرف مکانت متقیانه یعنی این جایگاه هر کسی بهش نمی‌رسه. هر کسی گذشت از مالش از نه که الانم بگذره به این اون بدن بحث اینه که انسان سبب نشه مال دنیا قطع ارحام بکنه سبب نشه این مال دنیا انسان اندوگین بشه و غمو حس به خوره افلا تعقلون درس عبرتی نیست براتون عقلتون کجاست خردتون کجاست فهمتون کجاست افلا تعقلون نمیخوای بفهمید کی میخواید بفهمید شما سرزنش بر کسی که این سوره رو میخونه الله هم دلداریش میده بعدم بازم درس عبرت نمیگیره الله میگه بازم نمیخوای درس بگیری بازم نمیخوای بفهمی تا کی نمیخوای بفهمی افلا تعقلون حتى اذا سيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشا ولا يرد باؤسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل ما وهي أشتد يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يأس از نشانه های کفره کافر معیوس میشه اینجا الله جل شأنه نگو حتی یئس الرسل معیوس شدن کلمه یئس را برای پیغمبرانش رو کار نمیبره حتی اذا استئس الرسل مثلا در ترجمه فارسی ما بخوام بخونیم زمانی که پیغمبران الهی ناامید شدن نه خیر ناامید نشدن نگو یئس الرسل بر وزن استفعل سیاس استفعل مثل استخراج چیزی را از چیزی بیرون کشیدن مثلا یا استعلام تبر پیامبران الهی تکذیب می‌شدن، پیامبران الهی مایوس می‌شدن، مایوسشون میکردن چی شد؟ تو که می‌گفتی عذاب میاد، تو که گفتی عقوبت می‌شیم، تو که گفتی فلان میشه. تو که گفتی که ما نصرت می‌یویم، ما عزت می‌یام. کجا کجاست کجاست؟ کجاست؟ 13 سال به رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن، اومد به مدینه، خواستم جلوی رفتنشام بگیرن، دم غار رفتن، نتونسن پیداش بکنن. الله که بخواد به کسی عزت بده، کسی نمیتونه جلویش بگیره. خواستم مشرکین جلوی این عزت رو بگیرن. پس اونها اومدن پیغمبر الهی را مایوس بکنن. تو هم پیانبران پیشین ای محمد علیه الصلاه و سلام تو هم مثل اونها همون برخوردی که امت کف داشتن با پیانبرانشون همون برخوردن با تو خواهد شد همون تعنه ها که به پیانبران پیشین میزدن به تو هم میزنن همون چیزی که فرعون میگفت به موسی به تو هم میخواهند گفت سوره یوسف آخر عاقبت یوسف چی شد به کجا رسید تو هم همینطوره ای محمد علیه الصلاه و سلام این دلداریه و ظنوا هم قد کذبوا ظنوا اینجا جمان، گمان گمان کیه گمان پیامبرانه نه گمان پیامبران نیست ام المؤمنین میگه میگه بعضی ها این آیه را اشتباه میفهمن این قد کذبو نیست این قد کذبو هست زمانی که پنداشتن کفار گمان بردن کفار و ظنوا انهم قد کذبو در مقابل این وعده هایی که داده شدن کفار پنداشتن گمان بردن که پیامبران همینطوری وعده دادن پیامبران وعدهشون به تحقیق نپیوسته اون چیزی که از نصرت یاد شده که یا نصرت پیدا میکنن اون یا عزت مییابن گمان بردن که خلاص دیگه اینا سرشون بالا نمیارن با قول معروف. این تفسیر و مومن آیش بل قراعت کذیبو هم قراعت کذیبو داریم هم کذیبو داریم. هم قراعت کذیبو انهم کذیبو ای المؤمنون مؤمنین اتباع پیانبران گمان بردن. نه که خود پیانبران ها یا این گمان ما بگیم به کفار برمیگرده. یا این گمان برمیگرده به کی؟ گمان برمیگرده به مؤمنین. چون ابتدای آیه از استیاس یاد شد از استخراج اونیه است که از کی این قضیه خارج میشه از این گمانه از کفار یا از مؤمنینی که الان دارن معیوس میشن الان کفار بهش رو, رو کردن چی شد؟ اونها گمان بردن اطباع پیانبران که این وعده به تحقیق نپیوسته و دیگر امیدی در اسلام کفار دیگه نیست دیگه کسی هم مسلمان نخواهد شد که شدن از سجابته دعوت جاءهم نصرنا اونجا هست که نصرت الهی میاد خب پس در هر دو صورت تفسیر ما بخوام بگیریم چه این گمانه از کفار باشه چه این گمانه از اطبا پیامبران باشه فرج و گشایش در اوج سختی خواهد اومد در اوج دلتنگی گشایش میاد به هنگامی که تو در اوج سختی هستی سرازیر شده بر تو واژگون شده بر تو مشکلات زندگی اونجا هست که گشایشه میاد ارزش داره تا قدر خدا را بدونید قدر اون نعمت را بدونه انسان اینطوری قدر نعمت رو نمیدونه وقتی که همه چیز به راحتی بیاد مثل بچه بچه‌ای که پدر زحمت می‌کشه بچه راحت نشسته موبایل می‌خوام پلیسیشن استیشن تلویزیون می‌خوام موتور می‌خوام ماشین می‌خوام راحت نشسته عین خیالش هم نیست اون پدر داره عرق می‌ریزه جون میگنه چی میشه حدر میره اون مال اون عرقه به باد فنا میره براش ارزشش داره پولو داره باد فنا میده نهایت ناشکری این ناشکری که پیش میاد وقتی که راحت اون مالی به بیاد باد آورده رو میگن باد میبره راحت اومده راحت میره من میاد در مقابل سختی، فإنما العسری، يسرا، کشایشه، که خواهد اومد چندین برابر اون سختی هاست، چنانچه صحابه فهمیده، رضی الله عنه مجمعیم جاءهم نصرنا نصرة امراد ونُجيا من در اون فتنه و مصیبت و سختی کسانی نجات می یابند که متقی باشند اون کسانی که الله اونها را دوست داره اون کسانی که الله بخواهد نجاتشون میده ما چند بار در قرآن قصه لوت رو داریم هر جا قصه ای از لوت هست در قرآن شما وقتی که نجات لوط علیه السلام می بینید ما او را نجات دادیم الا همسرش الا یکی از اونها اون الا اون پیرزنه، حتی با یاد اسم پیر یادش میکنه حجوز فلغابرین. از باب نکوهش و سرزدنش و تحقیر چرا چون ایمان نیاورد؟ حتی در سوره تحریم مثال میزنه برای مومنان زن لوت برحضر باشید شوهرت خوبه فرشتست به خودشا خودت کی هستی زن لوت نباش ناشکر و ناسفاس نباش به چسب ایمانت به قرآنت به دینت ای زن تو در قبر خودت میخوابی شوهرت در قبر خودش میخوابه اینقدر که اهمیت به بچه تو و شوهرت میدی بی این اون میدی به خودت اهمیت بده به دین و ایمانت بشین تهجودی بخون ای زن شوهر اگر خاص است نمیتونه شب روی دو پای خودش بیسته تو چه عذری داری که نمیتونی نماز تهجد بخونی ای خواهر ای مادر سران پیری و معركه میگیری با این زانی و اون زانی و پاهامو نمیتونم و, و, و درد و گردون درد و چطور میخوای الله یاری کنه در سران پیر دستتو رو بگیر در صورتی که خودت سر به سجده الله نه نگذاشتی خواهرها باید درس و عبرت بگیرن خنیمت به شما را از اون صحت و سلامتی که الله بهشون داده از اون فراغ و بیکاری که الله بهشون داده شوهر داره زحمت میکشه نون داره میاره جلابتون میذاره چی میخواهید همش دنبالت جملات از این لباس به اون لباس از این سفره به اون سفره نمکی تو خونه کم میشه دادشون درد میاد شکرت تو خونه نیست دادشون در میاد انگار که زندگی با شکر صحابه شکر داشتن یه شکر شوهر نخرید دادشون در اومده نمیدونم این نیست و همش به فکر خودشه و همش در سفره و اصلا به فکر ما نیست و همش ناشکری همش داد و بیداد و دلتنگی چرا چون هم ما نیست چون دل به آخرت نبسته چون غصه نمازشو نداره حسین نماز و سنتشو قرآنش نداره فقط همش شده دنیا یک ذره از اون دنیاش کم بشه دادش در میاد الله این این این دوست نداره نمیخواد این بندگی بندگانی الله بنده این میخواد بنده پرهیزگار میخواد این پرهیزگارانن پس که نجات مییابن نجاتشون میده الله اما هایی که پرهیزگار نبودن متقی نبودن الله که که عقوبتش کرد این درس عبرتایی که الله داره میگه انسان باید بگیره ولا يرد بأسنا عن القوم وقتی که بأس و عقوبت بخواد بیاد کسی بتونه جلو الله رو بگیره در جرم و به میبرن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلام عذر دادند از قریش ابو جهل و اطباش چی شد در جنگ بدر اللهی صحابه میگه در آسمون میبینیم که چمشیری داره میاد پایین و گردن اون مشتک از تنش داره جدا میشه دست و پاش داره قطع میشه تعجب کردیم چیه چه سربازانی آن سربازانی که وحش زده بودند هزار نفر در مقابل 300 نفر چی شد در جنگ بدرید میخونید جنگ بدر چی بود اصلا چی شد در جنگ واقعیه این عاقبت تبهکارانه مجرمینه، ستمکارانه، کسانی که دین را بر ایشن میگیرن، کسانی که دین را به, به مسخره و تمسخر میگیرند کسانی که دینداران را به شوخی میگیرند و عاقبتشون سخته. اینجا جنگ بود سر از تنشون جدا کردن. اگر اینجا جنگ نیست، سرتو رو زیر الوار ماشین در بیارن اون موقعی که الله بخواد عاقبتش بکنه، اون موقعی که سخت خونه بر جسد و تنش بریزه، اون موقعی که تو دریا غرقش بکنه همون فرعونی که غرق شد. الله حقوبت را از خودمون دور نبینیم اگر در ستمیم اگر در تبهکاری و ظلمیم الله مهلت میده ولیکن احمال نمی کنه چشمشی نمی کنه از الله نمیگذره اون ظلم و ستم این ربک بکلب مرصاد در کمین ستم گرد نشسته بترسیم از کمین الهی بترسیم اون لحظه‌ای که بخاط مارو عقوبات بكونا إن جلو تشهد بزار إنا ربك لبالمنصاد ألم يعلم بأبو جهل مقا ألم يعلم بأن الله يرى ونموقع يكمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم برجيش خند قريب برنامازش در سجدهش الله چی گفت در الله اخرم نمیدونه که الله داره میبینه در کمینش نشسته فکر کردی این ظلم ها و این حرفها و این سخنا و این پوزخنده ها مسخره همین توری الله ازش گذشت میکنه مؤمن داری تحقیر میکنی ایمان یک مؤمن تقویش را داری زیر سؤال میبری دینش و دیانتش داری زیر سؤال میبری اعتقادش رو داری زیر سؤال میبری allah می‌یادم بآن الله یه اینها گوش زده‌های الهی به هرت به کار جالبی بدونن که زمانی که بخواد عقوبتش رو بکنه الله کسی نمی‌تونه جلوش رو بگیره دریغ از یک نجاتگری فریاد درسی در اون لحظه اسلام محاله الله کسی نمی‌تونه جلوش رو بگیره و لا یرد بعصران قوم المجرمین لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ وَنَوْكِ عَقْلُ و دَرَانِ امت الصحابة را شون عباد درس درس گرفته چشم دل گوششون بازه میشنون عبرت میگیرن درس میگیرن مؤمنین متقی براشون عبرته اما اونهایی که اهل خرد و درک نیستن نمیخوان چشو بشون چشوبستن گوشوبستن قلبشون وبستن نمیتونن درس بگیرن عبرتی بگیرن این قصه نه براشون آرامشه نه درسی نه عبرتی هیچی چی توش نیست وای بر اون کسانی که چشم و دلشون باز نمیکonan برای درس و عبرتی که الله گذاشته در این سوره مکن حدیفا یفترو اینها حرف و سخن دروغینی نبود القصة دروغ نبود حدیثا يفترى مسون دکتر سروشی که میگه اینها افسانه بوده خیر اینها افسانه نبود اینها حقیقت بود واقعیت بود ممکن حدیثا يفترى اینها قصه های دروغینی نبود اینها حقیقت بود ولکن تصدیق الذی بین یدیه این آیات این قصه را نازل کردیم برای تصدیق این قرآن برای تصدیق نبوت محمد صلی الله عليه و و سلم در مقابل اون تکذیبی که میشد یکی میگفت این دیوانه است دیوانه این چنین قصه بازگو میکنه با این زیبایی با این همه درس و عبرت محاله گفتن جادوگر جادوگر قصه و داستان برای چی بیگه برای کی بیگه جادوگر دم میزنه که کسی ندونه چی داره دم میزنه این دم این که همه میدونن چی داره میگه ما میدونیم چی گفته بهمون به این قصه گفتن نه یاد دهنده ای داره یا دهندش کیه محمد صلی الله علیه و سلم که در صحرا و در بیابون بزرگ شده با بوز و گسفن بزرگ شده کی یادش داد؟ کدوم معلمی بود در بادیه و در صحرا؟ نه ده سالگی رفته به شام ده سالگی وقتی این بود که بیاد کتابی بخونه یا معلمی بیاد بهش این قصه و داستانها تعریف بکنه و بعد اینجا به این شیوه و به این روش خیلی شیوا و جذاب و پر از عبرت میاد بازگو بکنه اون یاد دهندش کجاست که دستش ببوسیم؟ کجاست که علمش رو پنهان نگذاشته؟ فقط یه نفر شاگرد داره که اون یه نفر فقط اومدن این اینجوری نبوغ کرده میگه میشه چرا کسی دیگر نمیاد از اون اتهامی که میزنید اون راهبی که مثلا میگن که دیده از اهل کتاب که اب بالای سر رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد میگه نزدیکش اومد میگه باهاش حرف زد میگه مشکی میذاشت بچه‌ای از خودش اون بود فرزندی از خودش اون بود هموشم هم همراهشه رفته برای تجارت تجارتو داره برمیگرده نه کتاب خونده چه کتابی خونده سواد خوندنش نوشتنش کجا بود پیشکی یاد گرفته بود خوندن و نوشتن کتابی بود اصلا در مکه که بخواد رسول الله صلی الله علیه و بخونه در اون سرزمین قحط و خشک و بی آب و علف چه قلمی چه دفتری چه کتابی کی بود اون صاحب کتابه یکی دو نفر بیشتر هم بلد نبودن که بخونن بنویسن انواع تکذیب را رسول الله صلی الله علیه و میبینه در دعوتش انواع به تمسخر کشیدنش بره ریشخند گرفتنش میبینه انواع اتهامات بهش میزنن الله میگه همه این تهمت ها تهمت های پوچیه، تهمت های اساسی نداره این سخنانی که شما دارید میبینید وحی منه و منم برای تأیید نبوتشوه برش نازل کردم این سخنان منم الله میگه که منم نازل کردم منم گفتم منم وحی کردم من از اون ماجرا میدونم که چی شده منم حالمم بر اونجا که چی شد اون زمانی که دسیسه کردن مک کردن و نیره کردن اون برادر یوسف منم اونجا حاضر بودم با علمم با دیدن و شنیدنم از اون ماجرا بلی که ای محمد تو اونجا نبودی هیچ کس اونجا نبود از این کفار و, و, و شيء تفصیل کلیش مفصل الله داره یاد میکنه. اینجا این قصه و داستان مفصل الله گفت چیزی از خلم نیفته. کسی نمیتونه ماجره را با دقت تعریف بکنه مگر اینکه ناظر بر قصیه و باشه این دقتی که شما میبینید در قصه یوسف نشانه نظارت الهی هست بر اون داستان و واقعیت. باید یک کسی بود در اون خلوتگاه میدید که نه چه مکری میکنن چه نه رنگی تفصیل ماجره ها را الله بگه من یاد میکنم. که بدونید این فیصله کردن تفصیل بازگویه گشایشی در بحث و گفتگوست که کل ماجراها ها را مفصل بگه و تفصیل فصل حق از باطله کی بر حق بود؟ یوسف یا برادرانش؟ یوسف علیه السلام پیامبران الهی همیشه بر حق و مکذبینشون مجرمین همیشه ناحق بودن الله مفصل از این جرگانها بر ما بازگو کرده بهودن با و رحمتن لقوم یؤمنون هدایت. تو را هدایت میکنه در تربیت فرزندت تو را هدایت میکنه در معاملات در خرید و فروشت تو را هدایت میکنه در همسرت رفتارت با همسرت در زندگی تو را هدایت میکنه در دوستی و رفاقتت تو را هدایت میکنه در تعاملت با خواهرت و برادرت با پدرت و با مادرت انواع درس ها و هدایت ها در این قصه ها نهفته است برو دنبالش تا برداشت بکنی یاد بگیری و این هدایت رحمت برت اومه تو هستی که خود میخوای از این نعمت و رحمت خودت رو برخوردار بکنی یا محروم بشی خودتی من الله میگه مثل باران رحمتی است که نازل میکنم این سوره رحمتی است بر شما این قرآن رحمتی است شماست باران الهی است برای شما شما میخوای برکه بزن، شما میخوای چاهی بزن، شما میخوای سدی بزن. چقدر میخوای برخوردار بشی از این رحمت الهی با خودته چقدر میخوای از این آب بنوشی با خودته این رحمت منه و لقوم برای کسانی که ایمان به الله دارن باور دارن کسی که باور داره میره دنبالش کسی که الله را قبول داره حرفش رو سر چشم گذاشته وعده الهی را حق میبینه اما کسی که الله را باور نداره و اعتقاد به الله جل شانه نداره اون شخص نمیتونه نه این قرآن رحمتی براش باشه نمیتونه نه هدایتی باشه نمیتونه هم نه گشایشی از اون غم و اندوه و دلتنگیش باشه این خلاصه این داستان از حسن استماعتون وقتی که در اختیار ما گذاشتید تا اینجا با ما همراهی کردید در داستان یوسف علیه السلام و برادرانش تشکر میکنم بارک الله فیکم و جزاکم الله خیره. و الله عليه و آله محمد